به نام خدا امشب هم ما در ادامه صحبت جلسه قبل در بابه کف و ایمان صحبت خواهیم داشت به جلسه قبل مسئله مربوط به آقای کفر و ایمان از بابت های در بابه های دینی و مسائلی که در آیه‌های های قرآن اومده بود و احادی صحبت شد من تصور میکنم که نیاز بیشتری هست که در این بحث مسائل بسیار آمیانه و مرموز صحبت بشه به خاطر اینکه بحث کف و ایمان بحثی با و در واقع تمام جنبه های زندگی یک بشر در طیف کف و ایمان میگنجه اولین سوالی که من از حضور شما دارم کلاً کفر و نشانه های کفر رو از بابت جنبه های معرفت نفسی و نشانه های اون رو لطفاً بیان بکنید. اینکه چه نشانه هایی داره و اینکه در جنبه های حیات و عملکرد روزمره زندگی یک بشر این کف چگونه قابل شناخت هست تا هر فردی بهتر و واضحتر بتونه واقعا خودش رو در این تیف جایگاه خودش رو در این طیف کف و ایمان پیدا بکنه همچنین نشانه های قریزی و عملکردی ایمان رو از شما خواهش میکنم که بیشتر توضیح بدید ممنون میشم بسم الله الرحمن الرحیم از یک لحاظ این سآل کاملا به جاست بسیار به ندرت مسئله کفر و ایمان تعریفی حسی غریزی و وجودی شده به نظر که وقتی از کفر ایمان صحبت میشه بوید که از یک مقوله در پشت آسمان ها صحبت میشه از یک مقوله کاملا ماورای طبیعی و متافیزیکی داره صحبت میشه فلانگ کفر و ایمان کلا دین مربوط به حیات دنیوی بشره احکام دین تماما مربوط به دنیاست انسان اگر حیات دنیوی و خاکی نداشت اصلا نیازی به دین نداشت این وبسی یادن باشه دین برای دنیاست انسان اگر موجودیت خاکی نداشت اصلا دین براش مطرح نبود و نیازی به دین نداشت برای همین انسان بعد از مرگش دیگه مسئول اعمال خودش نیست و هیچ حکمی در موردش نیست در محذر خداست فقط اونجا محاسبه میشه این وظیفهای نداره برای از مرگش بنابراین اگر دین یک امری ست مربوط به حیات دنیوی حیات خاکی بنابراین تمام باستابها و مفاهیم و مراحل حیات دینی هم باعثی در دنیا یعنی در همون تن و پوست و گوش در روزمرگی و در احساس و اندیشه و غرایز و کردار و مادیت بشر باعثی مفهوم بشه و کفریمان باعثی درک بشه این همون چیزیه که کلا در فرهنگ همه مذاهب نادیده گرفته شده و متکلمین و علمای دینی بسیار به ندرت اومدن دین رو از منظر حیات دنیاوی برای بشر ترجمه کردن این یک عظیمی در فرهنگ همه این مذاهب هست این جای خالی بسیار کلا است. و خود همین قفلت و فقدان لطل علل خرافات و نفاقها و جعلهایی بوده که به اسم دین ثبت شده و چنان شده که حتی این باور پرید اومده که وقتی از دین صحبت میکنیم یعنی باستی از موزلات و پدیدههایی صحبت کنیم که اصلا رفتی به حیات و مادیت و موجودیت دنیا بشر نداره خب خود همین طرز فکر که ابزار دست ملحدین و ماتریالیستا و دشمنان دین بوده تا دین رو تخته کنند یک دلیلش دفتت عظیم علمای دینی در این باب بوده که دین رو به زبان دنیا و حیات قدی بشر بیان نکردند و تعریف نکرده. این همان دفتت معرفت دینی هست معرفت دینی و از کفتی که از ضعیفترین و محصوم و مظلومترین معارف بشری است تا به روزت خب پس با توجه به اهمیت این مسئله ما مستقیما از به قرائز وارد میشیم انسان چون زنده هست زنده به قرائز است. از یه لاحظ تمام قرائز حیاتی هستند امود قرائز هم غذا هست و غریزه شهوت و نیاز جنسی هست این دو هستند قرارایز دیگر هم وجود دارن مثل غریزه بازی و بازیگری انسان غریزه تفریح و عش و سایر. و حتی نیاز به واتی و محبت نیست خودشه غریزه ذاتی تره. یه قریضه معنمی ما باست بداریم که اینها میتونی رو میتونیم در قلم روی قراریز قرار بدیم قراریز رو به مفهوم نیازها اگر مورد نظر قرار بدیم خب ما بایستی معنای کفر یا ایمان و درجات و کفر و ایمان رو یعنی شرک اخلاص نفاق اسلام اینها رو بایستی در قلمرو روی و عملکرد غریضی بشر رو بایستی درک فروض به همین دلیل هست که شریعتها عقومدین تماما قرایز رو مد نظر قرار نداره. تمام عقومدین معطوف به قرایز و نیازهای حیاتی بشره. درست به همین دلیله. پس اعکام بیائی الهی درست بوده. فهم علما آنچنان که باید کافی نبوده. خب، پس با راست نیازها رو درک کنیم. تا در یک انسان چه جز نیاز نیست؟ نیازهای عاطفی نیازهای شهوانی، نیازهای معیشتی نیازهای رفاهی و در مراتب بالاتر نیاز به علم و معرفت، اینها هم نیاز از اینها هم در غرایز قلمرو غرایز تمام متق غرایزی برتر و عادی تر نیاز به دوست داشته شدن نیاز به دوست داشتن اینها جزء قراراییض حیاتی است این قراری حتی در حیوانات هم است حتی روانشناسی گیاهان نیز ثابت کرده کسی مثل مولیس متژنگ در مطالعه زندگی و کردار گل ها حتی نشون داده که چند دی خود گیاهان نیست در اینها غریزه به عشق ورزی وجود داره خ برای این به قدم رو به جان میشه حتی بسیاری از عرفا نیز نشان دادن و معتقد بودند که حتی این غرایز در جمادات هم وجود داره. بسیاری از عرفا در مذاهب گوناگون در تاریخ بشر حتی, حتی حکیمان العا در یونان باستان و همچنین حکیمان چین باستان حتی در دوره دو هزار سال قبل از این اعتقاد وجود داشته که حتی جمادات و سنگ ها نیز جان دارند صاحب جانند منتخب درجات جان. در اجات جان انواع جان در اجات جان از یک راست کل جهان جهان جانه و در اجات جان این یک بحثی از آده البته که ایش الله شاید برطا داشته باشیم این بحث رو جانشناسی رو همینقدر مقدمتا گفتیم تا بتونیم اهمیت دین رو در قدم رو جان بررسی کن اگر انسان چیزی جز اینجا هاش نیست با قول نیچه میگفت اگر انسان پایینتر نداشت در خدا بودن خودش کمترین شکی شکل نمیداشت واقعا همین برای همین هم است که انسان اراده ذاتی انسان به بینیازی خودش دال بر اولوحیت و حضور روح خدا در انسانه درست به همین دلیلی که انسان ها اکثریت انسان ها ترمان همه انسان ها کم بیش قرائز خودشون رو یعنی نیازهای خودشون رو تغییر می و ازش نفرت دارن اون رو لن می کند خود اراده به بی, بی خودش از یک لازمی شو گفت انسانی ترین و الهی ترین نیاز انسانه اراده به بی, بی مطلق داله بر اینه که انسان خلیفه خداست یعنی ذاتا بی است ولی چون در اصفل و یعنی در حیات مادی ساقط شده تماما نیاز شده خب این در که سر این نیازها ها لحاظ میشه گفت درکه سر خلقت این انسان هست و انبیاء الهی رو بروردگار فرستاده تا این نیازها ها رو برای انسان معنا کنند و بگونه نیازها نیاز ها برای بشه که انسان به اون بینیازی اضاحی خودش برسه بنابراین بعد انسان نیازمند شده تا بتونه به بینیازی برسه پس نیاز برای بینیازی است بی نیاز برای است ولی این بینیازی از طریق انکار و کفرانی کردن نیاز حاصل میشه این همون جهل باشه. از یک اگر بخوام کفر رو زبان غرایز و نیاز بیان کنیم بس بگیم که انکار نیازهای حیاتی خیشتن تمام کفر است. گفتیم کفر مفهوم انکار به مفهوم پنهان داشتن به مفهوم رویگردان بودن از واقعیت وجودی کفر که مفهوم انکار واقعیت و چشم بستن بر واقعیت و لعن کردن واقعیت هست پس برای یک فرد بشری واقعیتی واقعیتر از وجود خودش نیست پس منشأ کفر انکار وجود خیشتانه منتظر انکار وجود خیشتانه با مفهوم انکار نیازه های خیشتانه انسان نمیتونه منکر روح خودش باشه بلکه در روح خودش عظمت خود و الهیت و جاودانگی و نیازی و سرمدیت و قداست رو احساس میکنه ولی میپنداره از جهل خودش اگر بتونه نیازهای خودش رو این کار کنه و چشم ببنده و تغییر کنه میتونه تو اون بینیازی و روح الهی در خودش برسه حالان که چنین نیست و بلکه کفر همین است یعنی به موانی انسانی که مثلا قریضه جنسی و نیاز جنسی در خودش تغییر میکنه لن میکنه و اون رو در خور خودش و در شان خودش نمیدونه این همون کفره و نهایتا به انکار خدا میرسه چرا؟ برای این نیازها رو خدا در انسان نهاده بنابراین انکار این نیازها و لعن کردن این نیازها خواه به انکار خدا میرسه که قایت کفره ببین به شکلهای مختلف این, این, این کار انجام میشه یکی بسته به اینکه انسان در چه شرایط فرهنگی و زیستی و اقتصادی بار اومده باشه به یکی از برای کسی که در یک قدم روی فرهنگ دینی داره زندگی میکنه، یکی یکی از رایشترین این انکارها و کفرها نسبت به قراریز خود روحبانیت ازدواج نکردن و ازدواج کردن رو در شعنی خود ندونستن این در چارچوب، این کفر در چارچوب فرهنگ مذهبی به صورت روحبانیت میکنه. میکنه و اما در چارچوب فرهنگ غیر مذهبی مثلا یک فرهنگ لایک مثل اروپایی آمریکایی تده چون عنوانی بارد میشه؟ تا اونبان فیمینیزم فیمینیزم ولی هر اطور ماهیتش یکیه که آقا در زن خب ولی ماسکولینیزم در مرد مردهایی که میگن آقا جلازه باش کنیم وگه بدبختیم وگه احمرقیم زنها هم هم دو میگه خب نتیجه چی میشه نتیجه طبیعیه یک از نصایش طبیعیش هموسکشالیزم بوده گرایی که خودش علاوه بر یک انحراف و گناه خودش یک عذابیست عظیم عذابیست عظیم در غرایه است جنون غریزه قریض جنسی رو دیوانه میکنه خب برای همین ما بیونیم که یکی از زمینه‌های قدیمی ظهور در خود معابد و اماکنی بوده که روحانیت پیش می کردند. می رفتن اونجا به ریاضت می در جهان مسیحی اوریانتر بروز کرده در جهان بودایی به شکل دیگه در جهان اسلام هم در تاریخ به شکلهای پیچیده همیشه این روحانیت وجود داشته بنابراین پس دیدیم که این حرجتاش کفره فرق نمی کسی که نیاز به محبت و دوست داشت شدن رو در خودش این مسا غریزه هست این غریزه چه و بسیار اسی تر از غریزه جنسی و غریزه گرسنگ نیازی به محبد برای انسان اسی تره. خب وقتی من از این نیاز رو در خودم می بینم که چقدر نیازنددم که یکی منو دوست بداره من چقدر نیازدم یه فالی منو دوست بداره و بعد خودم میگم که بهدارکسی کی تو رو دوست نداره چرا تلاش میکن که رو دوست بداره؟ تا بهش بگی که مثلا زدتا من رو دوست بذار چرا من با از پر بذارم در حقیق خب نا من اصلا نیازی ندارم که کسی منو دوست بذاری پس من چکار رو میکنم این نیاز قلبی و روحی خودم رو که ترین و یکی از متعالیترین نیازهای انسان هست نیازی به دوست داشتن و دوست داشتن رو انکار میکنم و در در خودم رو مخر میزنم و باطل میکنم قلب خودم رو این هم کفر آتفیست اون کفر جنسی بود این کفر آتفیست و با اخصان و دیگر به مثال یک کفر ذهنی مثال میزنیم خب یکی از غرایز ذاتی و نیازهای ذاتی انسان و خواسته انسان اراده به دانستان و فهمیدن. اراده به درک بیشتر و برتر خوب. من میخواهم فلان چیز رو بدانم یک استادی هم اینجا نشسته و من میدونم که اون میتونه به من کمک کنه و این سوال من رو پاسخ بده و این تکبر من اجازه نمیده که بیام استاد خواهش میکنم من نمیفهمم شما من رو بفهمان و چی میگم؟ نخیر من چه نیازی دارم به این نو دانستن اینم کفر زید نیست میگم نیاز خودم رو نیاز به دانستن و فهم معرفت برتر رو در خودم تختری میکنم از فرط تکبر و سوال نمیکنم. ببین بعد این سآل خودش یه کفر دیگریست کفر است. قبل نابرین ما سه تا مثال زدیم یکی در مورد قریضه جنسی یکی در مورد قریضه قلبی عاطفی، یکی هم غریزه و نیاز ذهنی و عقلانی بنابراین دیدیم که همه این کتمان ها و این کار ها و که در واقع کفر هاست همه این ها تکبر هاست برای همین کفر و کبر و انکار، کار ها، یک همه علت و معلول هم دیگه هستند و نهایتاً غرور خب غرور یعنی خودفریبی خب من این مطلب رو نمیدانم، ولی از فریضا کبرم نمی که بدانم نه نایتاً به خودم ادقا میکنم نخیر من میدانم حالا اگه نمیدانم غره میشم به نادانی خودم قرره میشم من نیاز جنسی دارم باید ازدواج کنم اینو انکار میکنم نخیر نیاز ندارم آه؟ و بعد قرره میشم به این بینیازی دروغی که به خودم ادقا کردم حالا اگه یک بیماری جنسی از شهوانیت مقتلا به فساد دارم میشم ولی حاضر نیستم ازدواج کنم من میل دارم که دوست بدارم و دیگران من دوست بدارم با اینکه برای این دوست داشتن تلاش بکنم و اصلا به زبان بیارم صادقانه نیازم رو به محبت انکار میکنم در حالی که در قحطی دوستی و محبت به سر میبرم بخانم ادغام میکنم نه خیر من خودم غرق در محبتم و اصلا نیازی به محبت ندارم انواع قهرز شدنه برای همین خداوند در قرآن که شیطان رو اینشکلی خداوند معرفی میکنه بدانید که شیطان کالایی جز غرور نداره میاد تا شما رو مغرور کنه پس ما دیدیم که حاصل این کبر و این کفر و این انکارها نهایتا غروره که وقتی انسان در هر ای از کفرش و کبرش به این رسید ابلیس میاد شیاطین میان سراغ انسان و این امر رو بر انسان مشتبه میکنند انسان رو واژگون میکنند واجبون ساداری پدید میارم ببین این واجبون ساداریه. من مفتخرم به چیزی که ندارم چنین میپندارم که دارم و بعد مفتخر میشم با آن چیزی که ندارم ولی میپندارم که دارم من اینجا که اینقدر خودم فریب دادم دیگه خودم رو دیوانه کردم یعنی خودم رو احمق کردم یعنی خودم رو به قرآن کر، کور، گنگ و خرفت کردم درست پس ما دیدیم که چگونه و نهایتا این سیر که اون سیر کفر در قلم روی نیازا و قرایز هست چگونه انسان رو به تحمیق میکشونه به خودخر کردن خود را اطلق و کورو کار کردن میکشونه پس حماقت محصول نهایی تکبر و کفر و انکار غرایز حیاتی خشتنه پس سماغت اینکه مولانا می فرماد که زحمقان بگریز که عیسی خود گریخت، سماغت بزرگترین و آخرین و منحله مکان اندسرین عذابی است که در قایت کفر چنین میاد که این همغت دیگه خودش بر آستانه جنون و یک مادی خویی و واژگون صداری هستش. خیلی ممنونم از توضیحاتتون استاد. ولی من تصور میکنم که این مسائل غریزی باید بیشتر توضیح داده بشه. شما روحانیت رو مطرح کردید. ببینید همیشه حداقل بشر امروز در چنین تصوری بوده که آنچه که در دین عم شده و احکام دین حس امر به تقوا و امر به بخششنداری در واقع به معنای انکار است. یعنی وقتی که گفته میشه کم بخورید و از لحاظ جنسی این به صلاح محدودیت ها رو برای خودتون قائل بشید چنین امرهایی نهایتا رهبانیت رو در ادیان ایجاد کرده یعنی کسی که پا به معبدی می‌ذاره به نیت اینکه در دین باشه بر اساس چنین احکامی است که نهایتا احساس میکنه که باید هیچی نخوره، گوشه‌نشین باشه و کلا زخت و عبودیت به معنای این بوده که فرد تمام قرا‌یب خودش رو نابود بکنه، نابودی در نابودی قرایض به معنای ایمان و به معنای اخلاص تفکر شده. و بر اساس همین دید بوده که بشر امروز وقتی که دین رو و احکام دین رو به چنین معنایی برای خودش تصور کرده این ضد دینی این طور معنی شده که خب من حالا پس دین یعنی اینکه که آقا برو نابود کن ولی خب من زندگی میخوام بکنم من دنیا رو دوست دارم و بر این اساس اتفاقا بشر امروز خیلی بر قرایز خودش داره اهمیت قاید بشت ببینید همین خوردن رو شما ببینید بشر امروز هیچ وقت اینقدر نمیخورده که دار دارم. از لغاز جنسی هم هیچ زمان انقدر بشر در طول تاریخ شهرت باره نبوده که بشر امروز است. خب آنچه که شما در مورد ازدواج مطرح میکنید اتفاقا کسانی که ازدواج نمی کنند نه به این عنوان که قریضه جنسی خودشون رو منکر میشد اتفاقا به سبب اینکه خیلی به نظر خودشون به قریضه جنسی خودشون بها میدن و اسبشو تنق و تنقی میذارن میگن چرا تمام اون ما با یک نفر زندگی بکنیم ما قریضه جنسی خودمون رو در تنوعات خودمون تنواعات بیشمار آدم ها میتونیم بسیار شدیدتر ارزاش بکنیم در واقع افسار گسیختگی قرایز و نفسانیت بشر امروز از بابتی همین توجیه رو داشته که ما چون میخواییم زندگی بکنیم و بشر باید زندگی بکنه و دین هم امر بر است که آقا قرایزت رو اصلا بحان نده و سرکوب کن بر اساس همین ضد دین شده و بر اساس همین در تمام قرایزش از همه اون جنبه ها که شما گفتید چه در مورد بازی کردن محبوبیت و مسائل دیگه بسیار افزار گسیخته شده و بشر امروز افزار گسیخته. و توجیه خودش هم اینه که من اتفاقا میخوام خوب زندگی کنم من از شما خواهش میکنم که این مطلب رو پس بیشتر توضیح بدید متشکرم و این کاملا درست هست دلگه میشه مفتش که بشر الله تاریخی دچار یک افراط و تفرید شد ولی اگر پندار بر اون باشه که دین و اخلاص در دین کشتن قرائز حیاتی است بقید نیچه حکم نهایی دین خودکشیه بله. نیچه این صحبت رو کرده که در واقع علمای دینی و حتی پیامبران در واقع رو نشد که حکم نهایی رو صبر کنن اینا در واقع میبسیم گفتن که یه بشره اگر میخوایی رست باش شوی و خوداتو رو ببخشه بتر خودتو بکشی تا وقتی اشاره همین مثلا این کردید. بله، نشاز این طرف خب این صحبت رو به صورت یهو قلمرو کلمیک تر کرد. واقعهن برداشتشون نبود. در این حال ایشون هم در این تعارض بود. این نتونست واقعا به کنه دینم بیوپه‌ای ببرد این پرادیکس سوال دار که به صورت یک معما داشت. مسئله یک مسئله دار کرد. مسئله بسیار شدید که تعلیق کنه وجدان‌ها رو. بنابراین نظر میشه واقا این طور نبود. یا این بود. یشو یک زندگی مسیلدانی رو در پیش میگیره فلان که ما میبینیم که آنچه که بر زندگی ما دومولکومری ایشون ای یک زندگی قدیسوار بله پس اگر دین بی دینی از عمل و راهنمای زندگی شناخته میشه بنابراین میشه یک مؤمن بود برای همین این حرفایشون رو را اگر این شکلی بخواد نگاه کنیم قضاوتی سطحی کردیم تمام ترکیه خیلی از برخاست‌های منحرفی از اندیشه‌های دو و دیالکتیکی میشه سمت دیگری مفایمه او رو نایده گرفتن یا برداشتی جاهدان رو یا برداشتی فرصت ردبانه و سوسته با بکردن ایست. بله درسته ببینید از اون افراد که آقا رای رستگاری نفس خوشیست که در قرون و تجربه ترس خودشو پستاد ما دیدیم که از بطن خود اون روحانیت و روحانیت مسیحی بود که این اعلان جنگ بر علیه آن فرهنگی مسیحی برخواست بانی رونسانس مدید. که همون فکر دینی با قول حساب میشه که اومد اصلا نهایتا تمام دین رو خیلی مترمانه و روشنفکرانه زیر سال برد تمام مسیح زیر سال برد کی بود؟ یک کشیش لوتر لوتر یک کشیش آه. خیلی جالبه که بانی رونسانس یک کشیش بود مدید. آبه ببینید این از بطن رو روحوانیت جنونامیزی که دین رو که قرار بود دنیا و حیات رو زیبا و معقول و باعث رستگاری انسان بکنه اومده بود زده زندگی شده بود از بطن چنین رو، روحانیتی جنگ بر علیه چنین روحانیتی آغاز شد از بطن خود کلیسا نظر؟ خب ببینید نقطه که شما گفتید بسیار جالبه و حالا حاصل اون افتاد این تفریطه که خیلی خوب بیاییم تمام قرایزمون رو جولان بدیم جنون آمیز و زندگیمون فقط تبدیل بشه به هرچی بیشتر خوردن هرچی بیشتر شهبت بارگی کردن و هرچی بیشتر بازی کردن تا سرحد جنون و جنایت باید اینم تبدیل به نهایت این نهزت هم که در رونسانس پیدا شد به اینجا رسید خودش به ضد حیات بشر بر روی زمین شد اسمش آزادی بود اسمش آزادی بود اصارت و این آزادی, آزادی این آزادی بود اون به اصارت نفس بود این آزادی نفس بود هر دوتا به نابودی بشر شد و میبینیم که این آزادی حتی نابودیش تذکین شده تره به این بشر رو داره عقیم میکنه این افسار بسختیگی جنسی انسان ها رو داره در قلمروی همجنس گرای ها عقیم میکنه و همون بقای غریزی و جانوری بشر رو داره تدید میکنه. بله، داره. بله، خود اجز ما می بینیم که قلمروش همجنس گراییه در همجنس که شدیدترین روش ها رو داره. نمی داره نابود بکنه. ببین هر اوتاش ناهت بود. هر اوتاش خوف. این مسوفت نو برخورد جاهلانه نسبت به اون قضیه بود. و هر دو تا این یک مطلبی وجود داره که در فرهنگ اسلامی متسبان مارز شده در میان فرقه از تصوف هم قدم فرسایی شده از قدیم تا به امروز صد اونوال نفسکشی کشی آقا انسان مؤمن وقتی به مقام اخلاص و رستگاری میرسه و معروف به خدا میرسه که نفس خودش رو بکشه نابود کن از خب ما همچین سخنی رو نه در قرآن داریم نه در سخنان ائمه اطهار داریم اونای که قصفه های قداست و لستگاری بودند خلفای خدا و اولیای خدا و جمال خدا بر روی خاک بودند نه همچین حرفی زدند و نه این شکلی زندگی کردند نفسکوشی یک فکر کاملا غلط. نفس رو خدا آفریده همین انسان از نفس واحده هستند اون واحد هم خود خداست نفسکوشی یعنی خدا برای همینه. این تلاش‌های کشی در سور تاریخ یک صورتش روبانیت بود خوده قرآن میگه که انهایی که روبانیت بشه یک دین مندرآوردی بود و اکثرشون اینا منافقان و فاسقان بودند یعنی زد خدا شدن بله اینکه بران نیست که نفس نابود بشه نفس باید تربیت بشه و تعالی پیدا کنه انبساط و توسعه پیدا کنه لطیف بشه رقیق بشه زیبا بشه متین بشه باوقار بشه نه اینکه نابود بشه همین نیازها آنگاه که تحت تربیت و عمل دینی در میان نفس رو به خدا میرسونند نفس به واحد خودش که خود خداست میرسه و در هیچ دینی مثل اسلام این احکام صورت تعادل محض ارائه نشده واقع. این رو حتی علمای مسیحی هم کسایی مثل گوستاولوبون مثل کارلایل مثل امرسون مثل حتی مثل نیچه که اینقدر ظاهرا نهیلیست بود اینها از این لحاظ لاغل دین انسان رو دینی دین اسلام رو دینی بسیار کاملتر و بهتر از مسیحیت رایج در اروپا عرض شدی کرد که دینیست واقعا متعادل و عادل و انسان دوست که غرایز رو دوست میداره غرایز رو لعنت نمی‌کنه کنه <تصفيق> بنابراین بعد واضح شد که این افراد امروزی این شهبتبارگی و قریض پرستی و نفس پرستی حاصل شدگی نفسه در تاریخ. بله. این کنش و واکنش این یک سلماد میکانیکیست محصول اونه این محصول همونه, همونه بس. در اون روحانیت و نفسکشی نفاق در اومد از اونجای که نفاق چیزیست عذاب آور عمرش تمام شد از توش کفر اوریان شد ما از با چه با کفر اوریان است؟ در گذشته مواجه با نفاق بودیم و ارزش معرفت دینی در همینه که ما این حد رو این اعتدال رو درک بکنیم برا همین ما معتقدیم که بدون معرفت نفس نمیشه دینداری کرد و شریعت رو اجرا کرد منطور به میزانی که نفس خودش میشناسه نفس چیه تماما نیازا و قرایضند به میزانی که غرائض خودش رو میشناسه میتونه کاربرد درست و ای از عقامدین داشته باشه وگرنه در عقامدین دچار اختلال تفید میشه و چاره‌ای روزین این نداره بنابر این شریعت ها و عقامدین بدون معرفت نفس نمیتونه هدایت کننده باشه نمیتونه. تعادل انسان در عقامدین بدون معرفت نفس خودش این عقامدین رو همیشه به صورت افراز تافیک نشون میده به خصوص امروزه که نام روی تصاون کو سیرتی ها و جنون و ماده های نفس هست بدون معرفت نفس واقعا یک روز هم نمیشه حتی تظاهر به دینداری کرد دینداری که بماند تظاهر به دینداری هم این روزه ناممکن شده به خاطر اینکه چنان اماریگی نفس از زمین و آسمان به واسطه تکنولوژی مدرن داره میباره در نانخانه خصوصی زندگی افراد و در خانواده‌ها داره به واسطه ماهواره‌ها و این رسانه‌ها می‌باره حتی انسان برای خودش هم نمیتونه تظاهر به دینداری کنه این از یک لحاظ یک لطفلهیسی تفیقالهی است که انسان دیگه نمیتونه دین منافقانه وسچی داشته باشه ما در هستیم که انسان یا باسرومی روم باشه یا زنگی زنگ یا ی دین خالصانه و واقعی و قلبی رو داشته باشه که جز اساس معرفت نفس ممکن نیست یا مجبوری که بزنه به سیم آخر کافری ظاهر و باطن یکی باش وسط جایی برای بازی ندارد. ندارد. خب ببینید مداله من فمینیزم فیمینیزم یعنی مذهب به صداح اصالت یا ماسکولینیزم مذهب اصالت نرینگی ببینید این هم دو صورت افراد ما کل تاریخ بشر رو تا همین یه ررن پیش قلم روی مرد سالاری میدونید مرد سالاری میدونید یعنی اصالت نرینگی خب ما میرینید که فکر و فرهنگ و روحیه مرد سالاری حاصل انکار مرد نسبت به نیازش. دارو توو زان. دارو سفین نرینگی. این قرار تو تاریخ توشی باشو کن بود. خودسان نیازی نداره. خودسان نیازی نداره، خودش خودش کافیه. بله، همینه، ولی بل خب در این بود که نیاز داشت، چون نیاز داشت، هر وقت چنین مرد کافری، مرسالاری، یعنی کفر مردانه همواره انواعی از مرسالاری‌ها رو در تاریخ به نمود گذاشته، کفر مردانه. مم. یعنی هر مردی که خودش رو بر سر از زن میدونه این مرد کافر. کافره. مثلا واضی غریزی یکی از های کفر مردانه اینه که مرد خودش رو به هر دلیل، دلایل فلسفی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی اینها به اون است. به هر دلیل یا بی‌دلیلی، مردی که خودش رو برتر از زن میدونه این مرد کافره. و در احاطه کفر قرار داره. اساساً نیازی به نداره. کافری بعد ما واضی شد کافره یعنی عمقه. یعنی جاهله. یعنی یه یعنی بدبخته خب حتی در خیل تاریخ زن هم هم مرسالاری رو پذیرفته بودن خب خدا ما رو به عرصه جدید رسونده امروزه اساساً در قبال مرسالاری زنصالاری یعنی فیمینزم هم آشکار شده حالا زن میگه آقا جان یه قرن 11 و و و تا اواهد قرن 20 دوران برابری بود این هم درورش نبود لذا عمری نکرد چون زن من براب همونطور که سیب برابر نیستن پرتقال نارنگی خیلی شبیه هم ولی برابر نیستن حالا در این دههای اخیر قدم روی ظهور فمینیسم یعنی زن سالاری این زن‌های مدرن میگن آقا جان ما برابر هم نیستیم چی میگه برابریم چرا برانگی در اون برابری دیدن که چه خلاص سرشون ده میگن ما هم از برتر از مردیم مرد ما نیازی به ما نیازی مرد نداریم ما, مرد نداریم. ما خودم خودم کافی, هستیم. کافی هستیم. بله. این قدم رای زنی مدرنی اینه این هم کفر زنان است یعنی حماقت زنانه هست یعنی بدبختی بایدرست. و شقابت زنانه است ما می‌بینیم که زنهایی که در این قدم را هستن بدبخترین، ترین و دریوزه ترین زنها هستن اینها در عمل اتباقا بیشتر هر زمانی دریوزه مردها هستند همه ارباباشون مردن و اینها از هر زمانی چی تو پوچ کردن خودشون رو بلده. به پای مردان تا از مردانی کنن، ولی مردانیگی استفاده کنند ولی شعارشون فمینیزم زن سالالیزم این خودش یه دروغیه که خود اونها بهتر میدونن که تا دا چطی دارم دروغ میگن و اتباقا بیشتر از زمانی دریوزه ترند هم که مرسالارها هم به میزانی که علاز غریزی دریوزه زن بودند ما میدونیم که مرسالارها یعنی مرسالارهای گردن کلوفتی که زن رسل آدم ما در پس پرده زنهایی چنین مرزهایی بهتر می دونن که این مرزها تا چدی چد در یوزه زنهاشون هستند بله. به میزانی که در هستند در پس پرده ها در بیرون شعار مرسالاری می‌دن و زنها را تغییر می که زن اصلا آدم نیست به اون بله میشه. خب تو همینجا فکر می‌کنم کنم حالا برسیم به جنبایی دیگر صحبت شما اگر سوال دیگری دارید می‌تونید. خیلی ممنون از توضیحاتتون من یه سال دیگه میخواستم مطرح بکنم اونی تمام آدم ها از لحاظ ذهنی خودشونو مؤمن و با خدا میدونند اکثریت افراد همه خودشونو خوب میدونند همه خودشونو عاشق میدونند همه خودشونو با محبت میدونند در واقع کسی رو پیدا کرد که خودش حداقل از روز ذهنی خودش قضاوت بکنه که قسیل قلب هستش من میخواستم از شما اقلا اینکه این چه معنایی داره؟ این رو کنی توضیح بزنید و دوباره اینکه که یکی بشر چگونه میتونه از لحاظ معرفت نفس و در واقع در وادی منطق کفر و ایمان خودش رو محک بزنه و باید گفت که از لحاظ منطقی کفر و ایمان آیا تفاوتی داره یا نه من میشم که این سآلات رو پاسخ بدید متشکرم یه کلامی حضرت علی داره که من فکر کنم از این کلام ما میتونیم به این پاسخ جواب بدیم این به این سوال. این سآلتون جواب بدیم فرمود که ناقص نمیداند خود را الا انسان کامل اینه وقت انسان کاملی که خودش رو کامل نمیدانه خودش را ناقص وقتی نقص و کمال رو بخواییم در قدم روی مفاهیم و صفات بیاریم میتونیم این سخن حضرت رو از پیش صدها سخن دیگر در بیاریم. یعنی بگیم که کافر نمیداند از خود را الا انسان مؤمن. یعنی انسان مؤمنه که انسان مؤمن رو کافر میدانه یعنی کفته خودش رو می‌بینه. از سخن دیگر داره میگه که کسی که به قلم رو به نمیدانم نرسیده باشه. هرگز برآستان علم و معرفت قرار آلمان گرفته. اینم بیان دیگری از همون سخن. و بیان دیگه میشه گفتش که جاهل نمیداند خود را الا انسان عالم یعنی انسان به میزانی که علم داره جه رو در خودش میبینه و خودش رو جاهل میبینه <تصفيق> سخن مربو بو علی فکر میکنم که به آنجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم این رو همه ی حکیمان بزرگ و علما بزرگ این ساخنان رو به نوعی دیگری گفتن پس در مورد کفریمانم همینطور انسانی که در خودش نه کفری می نه جدی می نه جنونی می نه شقاابتی می نه حارتتی می نه, دریوزگی میبینه، نه میبینه در یوزیکی می بینن نه بازدلی میدونه می بینه طبواقع انسان باسته گفت کافر جاهده و همون گیزن ندان وقع رو قرار که نمی بله به هم میزن که نمی‌بینه. به همون هم میزن که کی رو نمی‌بینه؟ خودش. خودش خودشکن پس می باز به معرفت نفس. باز نظرین مات که اکثریت مردمان از معرفت نفس بیزارند همنور که قرآن میفرماد که اکثریت مردمان کافر و جاهلند. جاهل اندناریت همناثریت پس انسان به میزانی که معرفت نفس تاره. یعنی روی به خوده یعنی علی ایمان به میزانی که چشم دیدن خودش رو داره میتونه ببینه خودش رو روی به دین قرار داره روی به ایمان قرار داره روی به خدا قرار داره چرا براین خدا در دل انسان در واقع روی به خدا قرار داره رو خدا قرار داره یعنی مومنی انسان به میزانی که نفس خودش رو میبینه میبینه که جز سوالت ها جز حرس جز شهوات جز جنون جز آرزوهای ابلهانه جز وسفسه فریبکارانه، سریبکارانه جز دقل و دقلکایی و بازی و بوزشیدی هیچی در نفسش نیست به نمیبینه به میزانی که اینو میبینه چون مؤمنه اینو میبینه ببینید پس تا چه معرفت نفس و ایمان از یک جنسند و و با الله مالله امکان. این توان دیدن بیاد. بله. انسان بگیم زن که باسیل داره نیومده ببینیم زن که نیومده ای داره باسیل ادواری. این میتونه خودشو ببینه. پس ببینید انصافا که خوش میتونه ببینه این میتونه خودشو بفهمه. یعنی دارای آگلی. ببین پس آگل نیز از ایمانه ایمان نیز از معرفت نفس معرفت نفس نیز از ایمانه همه ی یک مجموعه است. انسان به که چشم و گوش و هوش خودش نسبت به خودش کل کر می‌کنه هایا نسبت به جهان بیرون و نسبت به دیگران میتونه شنواتر و بیناتر باشه؟ معلوم می‌کنه. انسان وقتی نسبت به گوش خودش پشته نسبت به خودش پشته، نی نسبت به گوشه خودش پشته یعنی گوشه خودش کر کرده انسان به که نسبت به خودش پشته یعنی این نسبت به بینایی خودش پشته یعنی چشم خودش رو کور کرده و الاخر بلد. یا این کسی خود رو نمیشناسه دیگران دام نمیتونه بشناسه جهان بیرون دام نمیتونه درک کنه پس ما ببینیم که معرفت نفس تعین کننده و ملاک نهایی کفر و ایمان عقل و و درستی و است <تصفح> حالا همه انسان ببیزنی خودش رو چون جز نیاز در خودش نمی‌بینه. و از انسان انسانیست خاشه و متوازه از بزرگترین نشان های ایمان تواضع و خفوه این رو ما در قرآن چندین آیه داریم انسان متکبر است که به قرآن وقتی راه میره به زمین لگد میزنه حتی زمین را در هشنه خودش نمیدونه معنای دیگر ای این مطلبی ای که فرمیدید چرا انسان ها اکثراً اینجوری هستند؟ خب این دلیل ذاتی داره که اگر انسان این رو بفهمه دیگه این شکلی نیست اینگر متکبر نیست انسان از اونجایی که صاحب روح خدا هست و این تکبر در اون ذاتی تکبریست, تکبریست الهی متکبر از اسمای خداست وقت خدا متکبره و تکبر لایق اوست این مقام کبریایی اوست بشر هم ذاتا اینو داره ما در جلسه قبل گفتیم که بشر ذاتا الهیست و ذاتا مؤمنه ولی نفس ال خب انسان اصلا ارزش معرفت نفس اینه که انسان رو نهایتا به ذات میرسونه به علوفیت و به خداییت خودش میرسونه و واقعا به قلم روی بینیازی میرسونه ولی انسان با سیم مراحل رو طی کرده باشه تمامی 999 مرحله از خودشناسی تماما جهل و جنون شناسی و شیطان شناسی است قرور شناسی، هماغذ شناسی و بدبختی شناسی است این به میزانی که نیازهای خودش رو میبینه و تصدیق میکنه و لعن نمیکنه روی به بینیاز نیاز میکنه. بینیاز کیست خداست. پس این نسانی که به پشت خودش پشته نمیخواه نیازهای خودش رو ببینه چشم خودش رو کور کرده طبیعتا کافره. یعنی نمیتونه روی به بینیاز یعنی روی به خدا کنه. و اگر نمازم میخونه نمازی نمازیست جاهلانه و متکبلانه. برای همین هر چه نماز میخونه کافرتر، ابلاتر، دیوانتر و معذبتر میشه. تا جایی که میگه ویل کن آقا این همه یه اون هم نماز خوندیم خدا هیچ کاری برای ما نکرد نه خواستیم آقا. چرا برای که او نماز و دعا و نیایش خودش نمیتونه ببین میگیم راز و نیاز. سنسان رازه این نیاز خودش رو چی پیش بینیاز نیاز ببری؟ پیش خدا ببر. لا ولی میگه که من میدانم دل شما چی میخواد ولی شما باید این رو بگید تا هدایت بشید تا من اجابت کنم وگرنه اجابت نمیشه برای چندین همین چندین سخن از داریم که اون دعا و نیازی که اون نمازی که با معرفت نباشه اجابت نمیشه اون نماز نماز سحبی ریایی و منافقانه میشه و نهایتاً آدم مجذور میشه بزنه زیر نماز و ظاهر باطن کفش همونطور که من که رو به این کفر وقیهان و, و دریده برده بی معرفتی در دینش بوده بی معرفتی در دعا و نمازهاش بوده بی معرفتی امروز این جز معرفت هیچ کم بوده دیگه این نداره جز معرفت معرفت منظور اون معرفت نفسه منظور اون دانشه فنی و تکنولوژیکی نیست این معرفت نیست بشار امروز هر کسی علامه دهر دریای اطلاعات و معلومات و دانش هست کرده از کتاب و مدارس و ها ولی ابتدایی ترین حد مسائل خودشون نمیتونه در کنی کسان چشه برای همین ازیادات ما دانشمند دانشمندترین و عالم ترین آدم ها در قدم روی دانشگاه و مدارس در عمل روزمره و زندگی واقعی و طبیعی خودتون خودشون آجسترین و درمانده ترین آدم ها هستن. از آدم های بی و این میبینید در و بدبخت درند. فقط حرفهای گنده شعارهای گنده در عمل از همه ناتوان درند. طرف چند تا دکترا داره و در ابتدایی ترین مسائل زندگی روزمره خودش جاهل و آجزه و کورو کرده، و بایان دیگه انسان به میزانی که میل و خودشناسی و توان خودشناسی داره مؤمنه منطق خودشناسی، منطق شیطانشناسی در نفس خیشه. منطق جهل و جنونشناسی در نفس خیشه. این منطق منطق ایمانه. این دکریف دیگر از منطق ایمان. منطق کفر هم گفتیم منطق انکار و تکبره. از ما بیمیزان خودشو آهی میبینه،, میبینه، خودشو خیلی ممن میبینه، خودشو خیلی ممن میبینه در باقیه یر کافره یعنی جاهله. اینم برگانه دیگری از این منطق. حالا برسیم به معنای منطق به مفهوم تخصصی ترش که شعبه اصلی و اساسی از فلسفه بوده از قدیم باز بیان دیگری پیدا میکنه این سؤال شما ببینید فلسفه که اساسش و ذاتش غربی و یونانی است ما نگاه کنیم تمام اکثریت به فلسفه فلاسفه مشهور در غرب از اخلاطون بگیر تا به فرز کن موزه میبینیم که همه اینها مستقیم و غیر مستقیم زد زن هستند ما صحبت همشه قرار بود که مباحث کفر ایمان رو بگشنیم به قدم روی قرایز و نیازها ذاتی ترین اساسی ترین و حیاتی ترین قرایز قرایز, جنس. قرایز جنسیست قرایز جنسیت از قراریز گروسنیگی و تفضیح هم اساسی تری برای بشار بچه امروز از شکم مشکلی نداره بیش از هر زمانی با شما داره میبله دنیا رو داره خورت میده ولی در مورد قریز جنسیش قهفی زده سر از هر دورانیه نه نه. چرا قریز جنسی رازی بقای بشر در طول تاریخه پس از شکم اساسی تره